پدر شقیق‌ها ی من قلبش آنها جا ی خونی تکرار, تکرار می‌کنند سلام, سلام سلام سلام و من به جو و گل ها اندیشم سلام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 The Sahara Desert says it all. It's America miracle. All God's creations, great and small.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 ماهی بزرگاهی از اون بر بالبال زدن که نکنین این کارا رو به بده، فلانه و خطرناکه و بهمانه و بیزار. ولی ماهی کوچولا انگار که حال کرده باشن هی ادامه دادن توی سانیه همه چیز سیاه شد همه چیز یهو تمام شد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 دار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روزان پرنده نمایان شد انگار از خطوت سبز تخیل بودند آن برک های تازه که در شهبت نسیم نفس می زدند. انگار آن شعله بنفش, آن بنفش که در ذهن پاک پنجره, ها, پاک پنجره ها می چیزی بهجز تصور معصومی از چراغ نبود. نبود در کوچه باد می این ابتدای است.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 هوا سرد بود. ولی خب شکار توی هوای سرد برای اون خیلی مزه میداد. چند وقتی بود که داشت فکر میکرد که مجموعه تاکسی تاکسیدرمی‌هاش یه چیز کم داره. شاید منو شما درکش نکنیم. شاید فکر کنیم که طرف روانی و حیوان آزاره. حتی شایدم که باشه. ولی خب ما نمیتونیم قضاوت کنیم اون و موقعیتشو و به تب اعمالشو این شکارچی قصه ما آدم درس خونده‌ای بود، پولدار بود، خوشگل بود. ولی خب یک عاشق روانی کشتن موجودات بود.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 سلام ای شب معصول میان پنجره, پنجره و دیدن, و دیدن همیشه, فاصله همیشه فاصله ایست چرا نگاه نکردم مانند آن زمان که مردی از, از کنار درختان فیز گذر می کرد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 موجزات ساختنی ها. بیایم و مهربون باشیم و سازنده موجزاتی برای زندگی دیگر تمام یکی هرچی داشت و به طوفان سپر، یکی آب روش و سر هیچ بود یکی ماه هر هرچی بود و شکست یکی هم نشست فقط واسه خود درود شد واسه شود مثل حرف فراز نمیدونن اینجا جاده انتهاست دیگه یادشون رفته کی هستن نمیدونن این نشته از کجاست نمیدونن این اشتباه باه از کجاست موسک کی هم مسیر شوارون رفت عجب حسرتی شد مرای همه چه روزای خوبی از این خونه رفت نشستی ما گفتیم خاست خداست، ولی بهان است حقیقت کجاست تا کی خود فریبی؟ همینه که تقدیر بود حقیقت همینه که تقصیر ماست حقیقت همینه که تقصیر ماست